نو نقش خانواده و دوستان در شکل دهی به عادتها در سال 1965 یک مرد مجارستانی به نام لازلو پلگار مجموعه ای از نامه های عجیب را برای خانمی به نام کلارا نوشت. لازلو آدمی بود که خیلی به سخت کوشی اعتقاد داشت. در واقع تنها چیزی بود که به آن باور داشت. او اصلا اعتقادی به استعداد درونی نداشت و ادعا کرد که با عملکرد حساب شده و توسعه عادتهای خوب می توانید کودک را به یک نابغه در هر حوزهی بدل کنید. شعار او این بود: هیچ کس نابغه زاده نمیشود بلکه بدین شکل آموزش می‌بیند لازلو آنقدر به این ایده اعتقاد داشت که میخواست آن را روی بچه‌های خودش تست کند و با کلارا نام نگاری می‌کرد زیرا همسری میخواست که بتواند با او همراهی کند کلارا یک معلم بود و اگرچه احتمالاً به اندازه لازلو یک دنده و ثابت قدم نبود اما اعتقاد داشت که هر فرد می تواند با تعلیم صحیح مهارت های خود را پرورش دهد. به عقیده لازلو شطرنج می توانست یک حوزه مناسب برای آزمودن باشد و برنامه‌ای ریخت تا فرزندانش را در قامت اوجوبه شطرنج پرورش دهد. بچه ها در خانه تحصیل میکردند که در آن مقطع خیلی در مجارستان رواج نداشت. خانه با کتاب های شترنج و تصاویر شترنج بازان معروف پر میشد. بچهها بچه ها روبروی هم بازی میکردند و در بهترین تورنمنت‌هایی که گیرشان میآمد شرکت می کردند. خانواده یک پرونده خیلی دقیق از تاریخچه هر هریک از رقبای بچه ها در تورنمنت را نگهداری میکرد. زندگی آنها وقف شترنج شده بود لازلو، با موفقیت کلارا را ترغیب کرد و طی چند سال پلگارها والدین سه دختر جوان به نامهای سوزان، سوفیا و جودیت بودند. سوزان که بزرگترین دخترشان بود، بازی شطرنج را از سن چهار سالگی آغاز کرد. طی شش ماه او بزرگ سالان را هم شکست میداد. سوفیا فرزند میانیشان حتی بهتر از او بود. در چارده سالگی قهرمان جهان بود و چند سال بعد به یک استاد بزرگ تبدیل شد. جودیت کوچکترین دخترشان از همه بهتر شد. در پنج سالگی می توانست پدرش را شکست دهد. در دوازده سالگی به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که تا کنون در فهرست شطرنج باز برتر دنیا قرار گرفته است. در سن پانزده سال و چهار ماه به جوانترین استاد بزرگ تمام دوران تبدیل شد جوانتر از بابی فیشر که قبل از او رکورددار بود به مدت 27 سال او شماره یک چترنج زنان دنیا بود میتوان گفت که کودکی خواهران پلگار حداقل مثل آدمهای معمولی نبود و با این حال اگر از آنها در این مورد بپرسید ادعا می کنند که سبک زندگی جذاب و حتی لذت بخشی داشتند این خواهرها در مصاحبه هایشان کودکی خود را نخسته کننده بلکه مهیج میپنداشتند آنها بازی شطرنج را دوست داشتند هیچ وقت از آن سیر نمیشدند. شدند لازلو گفت که یک بار سوفیا در دستشویی و در ساعت میانی شب نیز شطرنج بازی کرده بود او با مشاهده این شرایط به دخترش گفته بود سوفیا مهرها را ول کن و او پاسخ داد بابا مهرها ولم نمی کنند. خواهران پلگار در فرهنگی بزرگ شدند که شطرنج را بالاتر از هر چیز قرار میداد آنها را برای این کار تشویق کردند و به آنها پاداش دادند در دنیای آنها وابستگی به شطرنج طبیعی بود همانطور که خواهیم دید، هر عادتی در فرهنگ شما معمول قلم داد شود، به نظرتان در میان جذابترین رفتارها قرار خواهد گرفت. کشش اغوا کننده هنجارهای اجتماعی انسانها همچون حیوانات گلهی هستند. دوست داریم خودمان را در گله جای دهیم. دیگران رابطه برقرار کنیم و احترام و تایید همتایان را دریافت کنیم این گرایش ها برای بقای ما ضرورت دارند در بخش عمده از تاریخچه تکامل ما اجدادمان در قبایل زندگی می میکردند آنهایی که از قبیله جدا میشدند یا بدتر از آن ترد می میشدند انگار حکم مرگشان صادر شده بود گرگ تنها میمیرد اما گله گورکا سالم میماند. در این میان آنهایی که با دیگران پیوند داشته و همکاری میکردند از افزایش امنیت فرصتهای جفتگیری و حدس به منابع لذت میبردند. همانطور که چارلز داروین اشاره کرد در تاریخ دور و دراز بشریت. آنهایی که یاد گرفتند به شکل بهتری همکاری و بدهه پردازی کنند بر دیگران برتری یافتند. در نتیجه یکی از ترین تمایلات بشری تعلق داشتن است و این ترجیح قدیمی تأثیر شدیدی را بر رفتار مدرن میگذارد. ما ابتدایی ترین عاداتمان را انتخاب نمی کنیم بلکه تقلیدشان میکنیم. ما همان سناریویی را دنبال می‌کنیم که توسط دوستان و خانواده، کلیسا یا مدرسه، جامعه محلی و جوامع بزرگترمان به ما داده شده است. هر کدام از این فرهنگ‌ها و گروه‌ها دارای مجموعه انتظارات و استانداردهای خودشان هستند. درباره ازدواج کردن یا نکردن و زمان آن، تعداد فرزندانی که باید داشت، تعطیلاتی که باید جشن گرفت میزان پولی که باید برای جشن تولد فرزندتان هزینه شود. از بسیاری جهات این هنجارهای اجتماعی همچون قوانین نامرعی هستند که هر روز رفتار شما را هدایت میکنند. همواره آنها را در ذهنتان نگه میدارید. حتی اگر در صدر امور ذهنیتان جایی نداشته باشند. غالباً بدون تعمل و گاهی بدون به خاطر آوردن آنها از عادتهای فرهنگ خودتان پیروی می‌کنید. همانطور که پروفسور فرانسوی میشل دومونتین می نویسد رسوم و رویه های زندگی در جامعه ما را با خود همراه می کنند. اکثر اوقات همراهی با یک گروه برای من کار ساده است. همه دوست دارند به آن گروه تعلق داشته باشند اگر در خانواده ای بزرگ شوید که شما را به خاطر مهارت های شطرنجتان تحسین می کنند شطرنج به یک کار جذاب برایتان تبدیل خواهد شد اگر شغلی دارید که همه افراد در آن لباس های گران می پوشند بنابراین شما هم به این کار تمایل پیدا می کنید اگر همه دوستانتان از یک شوخی خاص یا از یک تکیه کلام جدید بهره می گیرند شما هم احتمالاً از آن استفاده خواهید کرد تا آنها بدانند که شما هم آن شوخی را می گیرید و اهلش هستید رفتارها تا زمانی جذابند که به پیشرفت ما در جمع یاری برسانند به عادت های سه گروه خاص را تقلید می کنیم یک نزدیکان دو اکثریت سه، قدرتمندها هر گروه فرصتی را برای تقویت قانون دوم تغییر رفتار در اختیارمان میگذارد و باعث می‌شود جذاب جذابتر شوند. یک، تقلید از نزدیکان مجاورت تأثیر قدرتمندی بر رفتارمان دارد. همانطور که در فصل شش گفتیم، این امر درباره محیط فیزیکی صدق می کند، اما درباره محیط اجتماعی هم درست است. ما عادتهای افراد پیرامونمان را بر می داریم. روی کردی را که والدینمان برای کنترل مباحثات دارند، روشی که دوستانمان با دیگری خوشبش می کنند، و روی کردی که همکاران من برای کسب نتیجه دارند کپی می کنیم وقتی دوستانتان الف می زنند، شما هم آن را امتحان می کنید وقتی همسرتان عادت دارد پیش از رفتن به رختخواب در را دو بار چک کند تا حتما قفل شده باشد شما نیز همین کار را خواهید کرد خودم متوجه شدم که غالبا ناخداگاه از رفتار افراد پیرامونم تقلید می کنم، در گفتمان به صورت خودکار نحوه ایست دادن طرف مقابل را تصور می کنم، در دانشگاه کم کم شبیه به هم اتاقی هایم حرف میزنم. وقتی به کشورهای دیگر سفر می کنم، ناخداگاه لحجه محلی آنها را تقلید می کنم، با اینکه مدام می خواهم دست از این کار بردارم. به عنوان یک قانون کلی، هر قدر به فردی نزدیک تر شویم، احتمال اینکه از برخی عادتهایش تقلید کنیم بیشتر می‌شود. یک تحقیق پیشگام دوازده هزار نفر را به مدت و دو سال زیر نظر گرفت و متوجه شد اگر شخص با افرادی دوست باشد که چاق می‌شوند، احتمال اینکه خودش هم چاق شود پنجاه درصد بیشتر خواهد شد این پروسه به صورت معکوس هم جواب می دهد مطالعه دیگری نشان داد که اگر یکی از افراد حاضر در رابطه وزن کم کند در یک سوم موارد طرف مقابل نیز لاغر خواهد کرد دوستان و خانواده ما نوعی فشار مشهود ایجاد می کنند که ما را به سمت خودشان میکشاند البته این فشار فقط در صورتی بد است که با تأثیرات نادرست احاطه شوید. وقتی مایک ماسیمینیوی فضانورد، یکی از دانشجوهای امایتی بود، در یک کلاس روباتیک کوچک شرکت کرد. از میان ده نفر حاضر در آن کلاس، چهار نفر فضانورد بودند. اگر هدفتان رسیدن به فضا باشد، پس آن اتاق می بهترین بستر فرهنگی برای پا گرفتن شما باشد. به همین ترتیب یکی از مطالعات نشان داد که هرقدر آیکیو بهترین دوستتان در سن 11 یا 12 سالگی بالاتر باشد آیکیوی شما در پانزده سالگی بالاتر خواهد رفت. البته در این مطالعه میزان آیکیوی طبیعی افراد نیز تحت کنترل قرار گرفت. ما، ویژگی‌ها و روی کرت های افراد پیرامون را به خودمان می‌گیریم یکی از مؤثرترین کارهایی که می‌توانید برای ایجاد های بهتر انجام دهید پیوستن به فرهنگی است که رفتار مطلوب شما یکی از رفتارهای معمول آنها باشد وقتی می‌بینید دیگران کارهای مد نظرتان را هر روز انجام می‌دهند های جدید قابل دستیابی به نظر می رسند. اگر دورتان پر از افراد با اندام متناسب باشد، احتمال اینکه ورزش را به عنوان یک عادت رایج قلمداد داد کنید، بیشتر می شود. اگر با عاشقان موسیقی جاز احاطه شده اید، احتمال اینکه نواختن موسیقی جاز در هر روز را منطقی بدانید، بیشتر می شود. فرهنگ شما، انتظاراتتان نسبت به موارد معمول را تنظیم می کند. دور خود را با افرادی پر کنید که عادت مطلوب شما را پیاده می کنند. همراه آنها رشد خواهید کرد. برای اینکه عاداتتان را جذاب تر کنید، می توانید این استراتژی را یک گام جلوتر ببرید. به فرهنگی بپیوندید که یک رفتار مطلوب شما رفتار معمول آنها باشد. و دو، از قبل مشترکاتی را با آن گروه داشته باشید. استیو کمب، کارافرین اهل نیویورک، یک کمپانی به نام نرد فیتنس را اداره می کند که به نیرت ها، یعنی آدم های خوره، افراد خاص و جهشیافته ها کمک می کند، وزن کم کنند، قوی شوند و سالم بمانند. مشتریان او، شامل اشراق بازی های کامپیوتری، خوره های فیلم و افراد معمولی می شوند که می متناسب باشند. بسیاری از افراد وقتی میخواهند برای اولین بار به باشگاه بروند یا رژیم غذایی خود را عوض کنند، حس غریبی دارند. اما اگر به نوعی با سایر اعضای گروه مشابه باشند، فرزن هر دو عاشق فیلم جنگ ستارگان باشند تغییر مطلوب تر خواهد شد. زیرا این حس به وجود می آید که افراد شبیه به شما نیز در همین راه تلاش می کنند. هیچ چیز نمی تواند بهتر از حضور در یک قبیله موجب تقویت انگیزه شود. این شرایط یک جستجوی شخصی را به یک تلاش مشترک تبدیل می کند. پیشتر فقط خودتان بودید هویتتان منفرد بود شما یک مخاطب هستید یک موزیسین هستید یک ورزشکار هستید وقتی به یک باشگاه کتاب یا یک بند موسیقی یا یک گروه دوچرخ سواری می پیوندید هویت شما با افراد پیرامونتان پیوند می‌خورد. رشد و تغییر دیگر یک خواسته فردی نیست دیگر ما مخاطب هستیم. ما موزیسین هستیم، ما دوچرخ سوار هستیم. هویت مشترک شروع به تقویت هویت شخصیتان می کند. به همین دلیل است که ماندن در گروه پس از رسیدن به هدف یکی از لازمه های حفظ عاداتتان محسوب می شود. این دوستی و جامعه است که هویت جدید را در دل خود جای میدهد. و کمک می رفتارها در دراز مدت پا بر جا بمانند. دو، تقلید از اکثریت در دهی پنجاه، سولومان اش روانشناس مجموعه ای از آزمایش ها را انجام داد که اکنون هر ساله به گروه های محسلان تدریس می شود. به منظور شروع هر آزمایش، سوژه مورد نظر با گروهی از غریبه ها در یک اتاق قرار می گرفت. سوژه ها خبر نداشتند که سایر حضار اتاق در حال ایفای نقش هستند و دستور گرفتند که پاسخ های مشخصی را به برخی سوالات معین ارائه کنند. ابتدا یک کارت که یک خط روی آن کشیده شده بود و سپس کارت دوم که مجموعه ای از خطوط روی آن کشیده شده بودند به گروه نشان داده شدند. از هر شخص خواسته شد در کارت دوم آن خطی را که از نظر طولی با خط روی کارت اول مشابه است انتخاب کند. این آزمایش همواره به همین شکل شروع میشد. ابتدا تعدادی آزمون ساده بودند که همه افراد روی خط صحیح توافق داشتند. پس از چند راند دستگرمی آزمونی به شرکت کنندگان نمایش داده میشد که باز هم به اندازه اولی ها مشهود بود اما این بار شرکت کنندگان داخل اتاق به شکلی اومیدانه پاسخ نادرست را برمی‌گزیدند همه متفق القول میگفتند این دو خط با یکدیگر برابرند اگرچه طولشان مشخصاً با یکدیگر فرق داشت سوژه آزمایش که از این نیرنگ اطلاع نداشت بلافاصله سرگردان میشد. چشمانش از تعجب باز میشد لبخندهای عصبی میزد واکنش سایر شرکت کنندگان را مجددا تحت نظر میگرفت. وقتی افراد یکی پس از دیگری پاسخ نادرست را ارائه میکردند پریشانیش افزایش می یافت خیلی زود سوژه تحقیق هم به چشمانی خودش تردید میکرد و اثر انجام پاسخی ارائه میداد که میدانست نادرست است اش این آزمایش را بارها و به طرق بسیار مختلف انجام داد. متوجه شد که با افزایش تعداد افراد میزان انتباق پذیری سوژنیز افزایش میفت. اگر صرفاً سوژه به همراه یک نفر دیگر در اتاق حضور داشت، بازیگر تحقیق نمیتوانست تأثیری روی شرکت کننده بگذارد. آنها پیش خودشان میگفتند که با یک احمق در اتاق گیر افتادهاند. وقتی دو بازیگر به همراه سوژه در اتاق ظاهر می شدند، کماکان تأثیر چندان زیادی گذاشته نمی شد. اما با افزایش تعداد بازیگران به سه و چهار و در نهایت هشت نفر سوژه بیش از پیش ذهنیت اولیه خود را زیر سوال می برد. در انتهای آزمایش، تقریباً هفتاد و پنج درصد از سوژه با پاسخ گروه موافق بودند، اگر چه به وضوح مشخص بود که این جواب غلط است هر زمان که نمیدانیم چه کنیم به گروه نگاه می کنیم تا راهنمای رفتارمان باشد دائما در حال اسکن کردن محیط هستیم و از خود می پرسیم دیگران چه می کنند نظرات کاربران آمازون یا یلپ یا تریپ ادوایزر را بررسی می کنیم زیرا دوست داریم از بهترین های خرید خوراک و مسافرت تقلید کنیم. این معمولا یک استراتژی هوشمندانه است. آمارها همچون سند عمل می کنند. اما یک نقطه ضعف هم وجود دارد. رفتار معمول در یک قبیله غالباً بر رفتار مطلوب فرد میچربد. مثلا یک مطالعه نشان داده است وقتی شامپانزه در قالب یک گروه راه مؤثری برای شکستن آجیل پیدا می کند و سپس به گروه جدیدی می رود که استراتژی زعیفتری را برای شکستن آجیل دارند روش بهتر خود برای شکستن آجیل را کنار خواهد گذاشت و سعی می کند با سایر شامپانزه های گروه جدید همراه شود انسان ها هم همینطور هستند فشار داخلی قابل توجهی مبنی بر همراهی با هنجارهای گروه وجود دارد پذیرفته شدن در گروه غالباً پسندیده تر از پیروزی در بحث گرفتن قیاف های آدم های هوشمند یا یافتن حقیقت است. اکثر اوقات دوست داریم همراه جمع اشتباه کنیم تا اینکه حق با خودمان باشد ذهن انسان دوست دارد نحوه همکاری با دیگران را بداند دوست دارد با دیگران همراه شود این سرشت طبیعی ماست می توانید بر آن غلبه کنید می توانید گروه را نادیده بگیرید یا طرز تفکر دیگران برایتان اهمیتی نداشته باشد اما این امر به تلاش زیادی نیاز دارد مقابله با فرهنگ کنونی خودتان به تلاش بیشتری نیاز دارد وقتی تغییر عادت ها به معنای به چالش کشیدن گروهتان باشد تغییر غیر جذاب است اما اگر تغییر عادت به معنای برخوردن شما در دل گروه باشد بسیار جذاب می شود س. تقلید از قدرتمند ها انسان ها همه جا به دنبال قدرت، پرستیج و منزلت هستند. دوست داریم سنجاق و مدال روی کتمان نسب کنیم. دوست داریم عنوان رئیس یا مدیر جلوی اسممان قرار بگیرد. دوست داریم ما را بشناسند، بفهمند و تقدیر کنند. امکان دارد این گرایش بیهوده به نظر برسد. اما در مجموع حرکتی هوشمندانه است. بیشتر شخصی که قدرت و جایگاه بالاتری داشت می به منابع بیشتری دست پیدا کند. نگرانی کمتری درباره بقا داشته باشد و خود را یک همراه جذابتر نشان دهد. به سمت رفتارهایی جلب میشویم که برای ما احترام، تعیید، ستایش و منزلت به همراه دارند. دوست داریم آن فردی در باشگاه باشیم که میتواند وزنه بلند کند. یا موسیقیانی باشیم که میتواند سخت ترین نتها را بنوازد یا پدر و مادری باشیم که موفقترین فرزندان را دارد زیرا این چیزها ما را در میان جمع برجسته می کنند وقتی در دل جمع جا گرفتیم شروع به یافتن راههایی میکنیم که به عضوی برجسته در آن گروه تبدیل شویم این یکی از دلایل اهمیت زیادی است که برای عادات افراد تاثیرگذار گزار قائل میشویم. سعی میکنیم رفتار افراد موفق را کپی کنیم زیرا خودمان میل به موفقیت داریم. بسیاری از عادات های روزانه ما تقلیدی از افراد مورد تمجیدمان هستند. شما استراتژیهای بازاریابی موفقترین شرکت های صنعت خود را تکرار میکنید. دستور پخت قناد محبوبتان را از او میگیرید استراتژی‌های های داستانگویی نویسنده محبوبتان را قرض میگیرید سبک ارتباطی رئیستان را تقلید می کنید. ما از افرادی که به آنها قبطه میخوریم تقلید می کنیم. افرادی که جایگاه بالایی دارند از تایید، احترام و تمجید دیگران لذت میبرند. بدین ترتیب اگر فلان رفتار بتواند منزلت، احترام و تمجید از ما را بالا ببرد، برایمان جذاب می شود. همچنین این انگیزه را داریم تا از رفتارهایی که جایگاه ما را پایین میآورند اجتناب کنیم. حسارهایمان را اصلاح و چمنمان را کتاه می کنیم، چون دوست نداریم همه ما را به عنوان آدم شلخته محله بشناسند. وقتی مادرمان به دیدار ما میآید خانه را تمیز می کنیم. زیرا دوست نداریم در موردمان قضاوت بدی داشته باشد. دائما با خودمان فکر می کنیم که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند و رفتارمان را بسته به پاسخ آنها تغییر می دهیم. خواهران پلگار اوجوبه های شطرنج که در ابتدای فصل مطرح شدند، سندی از تأثیر قدرتمند و مندگار اثرات اجتماعی بر رفتار ما هستند این خواهرها هر روز ساعات زیادی را به تمرین شطرنج پرداختند و دههها به این تلاش قابل توجه ادامه دادند اما این عادتها و رفتارها جذابیتشان را به صورت نسبی حفظ کردند زیرا فرهنگشان برای آنها ارزش قائل می شد. با توجه به تمجید والدین پلگار برای رسیدن به جایگاهی نظیر استاد بزرگ شطرنج آنها دلایل زیادی را برای ادامه دادن تلاشهایشان داشتند خلاصه فصل فرهنگی که در آن زندگی می کنیم تعیین می کند که کدام رفتارها برای ما جذابند تمایل داریم رفتارهایی را به کار بگیریم که مورد تمجید و تایید فرهنگمان قرار میگیرند. زیرا عمیقاً دوست داریم در دل قبیله خود جای بگیریم و به آن تعلق داشته باشیم به تقلید عادات سه گروه اجتماعی تمایل داریم نزدیکان یعنی دوستان و خانواده اکثریت یعنی قبیله و قدرتمندان یعنی افرادی که جایگاه و پرستیج دارند یکی از مؤثرترین کارهایی که میتوانید برای ایجاد عادت بهتر انجام دهید پیوستن به فرهنگی است که یک رفتار مطلوب شما رفتار معمول آنها باشد و دو از قبل مشترکاتی را با آن گروه داشته باشید رفتار معمول و نرمال یک قبیله غالباً بر رفتار مطلوب فرد میچربد. در اکثر مواقع ترجیح میدهیم همراه جمع اشتباه کنیم تا اینکه خودمان به تنهایی کار صحیح را انجام دهیم اگر یک رفتار بتواند برای ما منزلت، احترام و تمجید به همراه داشته باشد آن رفتار را جذاب می بیمی در اواخر سال 2010 در یک آپارتمان قدیمی که فقط چند بلوک با مشهورترین خیابان استانبول یعنی خیابان استقلال فاصله داشت، نشسته بودم. در میانه یک سفر چهار روزه به ترکیه قرار داشتم و راهنمای خسته مایک در فاصله چند متری روی یک صندلی لم داده بود. مایک در واقع شغلش راهنمای تور نبود. او صرفا یک پسر اهل مین بود که پنج سال در ترکیه زندگی می کرد و به من پیشنهاد داده بود که جاهای مختلف این کشور را به من نشان دهد و من هم قبول کردم در این شب به خصوص مرا به مهمانی شام با حضور او و چند دوست ترک دیگر دعوت کرده بودند هفت نفر بودیم و من تنها کسی بودم که در یک مقطع زمانی از عمرش حداقل یک پاکت سیگار را در روز نکشیده بود. از یکی از ها پرسیدم که چطور سیگاری شده است؟ او گفت دوستان همیشه با دوستان آغاز می شود. یکی از دوستان سیگار میکشد، بعدش شما امتحان می کنید. نکته واقعا جالب اینجا بود که نیمی از افراد حاضر در اتاق توانسته بودند سیگار کشیدن را ترک کنند. دران مخته مایک چند سالی بود که دیگر سیگار نمیکشید و قسم میخورد که این عادت را به خاطر کتاب آلنکار تحت عنوان یک راه ساده برای ترک دوخانیات کنار گذاشته است. او گفت: این کتاب فشار ذهنی سیگار کشیدن را از روی تو برمیدارد. بهت میگوید که دیگر به خودت دروغ نگو. میدانی که واقعا دوست نداری سیگار بکشی. میدانی که واقعا از این کار لذت نمیبری. به تو کمک میکند، احساس کنی که دیگر قربانی نیستی. کم کم تشخیص میدهی، نیازی نداری که سیگار بکشی. هیچ وقت سیگار را امتحان نکرده بودم، اما به خاطر کنجکاوی نگاهی به این کتاب انداختم. نویسنده یک استراتژی جالب را انتخاب می کند تا به سیگاری‌ها کمک کند وسوسهشان را از بین ببرند او به صورت نظاممند هر سرنخ مربوط به سیگار کشیدن را بازنگری کرده و معنای جدیدی به آن بخشیده است او چون این جملاتی می‌گوید فکر می‌کنید که در حال ترک سیگار هستید اما هیچ چیزی را ترک نمی‌کنید چون سیگارها ها عملا نقشه هیچ را دارند. فکر می کنید سیگار کشیدن کاریست که باید برای برقراری ارتباط اجتماعی انجام دهید. اما اینگونه نیست. می بدون سیگار کشیدن هم اجتماعی باشید. فکر می کنید سیگار کشیدن موجب تخلیه استرس می شود. اما اینگونه نیست. سیگار کشیدن، اصاب شما را آرام نمی کند، بلکه آن را از بین می برد. دوباره و دوباره این عبارتها و عبارت مشابه را تکرار می کند. او می گوید این را خیلی سریح در مغزتان فرو کنید. هیچ چیزی را از دست نمی دهید و اواید مثبت خارق ای را نصرفا از منظر سلامتی، انرژی و سرمایه، بلکه از نظر اعتماد به نفس، عزت نفس، آزادی و از همه مهمتر طول و کیفیت زندگی آینده خود به دست می آورید. زمانی که به انتهای این کتاب می رسید، سیگار کشیدن در نظرتان مسخره ترین کار دنیا است. اگر دیگر هیچ فایده ای را برای سیگار کشیدن متصور نباشید، پس دلیلی برای استعمال آن نیست. این همان عکس قانون دوم تغییر رفتار است. آن را غیر جذاب کنید. می دانم که شاید این ایده خیلی ساده و سرسری به نظر برسد. اینکه صرفاً ذهنیتتان را عوض کرده و سیگار کشیدن را ترک کنید، اما چند دقیقه با من همراه بمانید. مبدع ای ها هر رفتار دارای یک وسوسه سطحی و یک انگیزه عمیق و اساسی تر است. غالبا وسوسه ای دارم که این چنین است. دوست دارم تاکو بخورم. اگر از من بپرسید چرا نمیگویم چون برای زنده ماندن به غذا احتیاج دارم. حقیقت اینجاست که جایی در اعماق وجودم برای خوردن تاکو انگیزه دارم. چون باید بخورم تا زنده بمانم، انگیزه اصلی و اساسی من این است که آب و غذا بخورم، حتی اگر به صورت ویژه هوس تاکو کرده باشم. برخی از انگیزه های اساسی این گونه هستند، حفظ انرژی، کسب غذا و آب، یافتن عشق و تولید مثل، ارتباط و پیوند با دیگران، کسب مقبودیت و تایید اجتماعی کاهش ابهام، دستیابی به جایگاه و پرستیژ، وسوسه و تمایل نمایش ویژه از انگیزه های اساسی و درونی ماست مغز شما با میل به سیگار کشیدن یا چک کردن اینستاگرام یا انجام بازی های کامپیوتری تکامل نیافته است در اعماق درون شما خواهان کاهش میزان ابهام و استراب کسب تایید و مقبولیت اجتماعی یا دستیابی به شن و منزلت هستید. یافتن عشق و تولید مثل مساوی است با استفاده از تیندر. ارتباط و پیوند با دیگران مساوی است با جستجو در فیسبوک. کسب مقبولیت و تایید اجتماعی مساوی با پست گذاشتن در اینستاگرام کاهش ابهام مساوی با جستجو در گوگل. دستیابی به منزلت و پرستیج مساوی با انجام بازی های کامپیوتری. عادت‌های شما راهکار مدرن برای تمایلات دیرین هستند. نسخه های جدید برای نده های قدیمی انگیزه های اساسی رفتارهای انسانی به همان شکل باقی میمانند عادت های مخصوصی که اجرا می کنیم بسته به دوره تاریخی که در آن حضور داریم تغییر می کنند بحث اساسی اینجاست روش های مختلفی برای حل و فصل یک انگیزه اساسی یکسان وجود دارد امکان دارد یک نفر با کشیدن سیگار استرس را تسکین دهد در حالی که شخص ثانویه با دویدن و ورزش استرابش را از بین می برد. عادت‌های های کنونی شما لزوماً بهترین روش برای حل مسائل پیش رویتان نیستند، آنها صرفا روش هایی هستند که یاد گرفته اید از آنها بهره بگیرید. وقتی یک راهکار را برای مسئله مد نظرتان پیدا کردید، مدام سراغ آن می روید. به همین شکل به وجود میآیند. این ارتباط میان راهکار و مسئله است که، تعیین می کند فلان عادت ارزش تکرار دارد یا خیر؟ همانطور که در مباحثات من پیرامون قانون اول مطرح کردیم، مغز دائما در حال جذب اطلاعات و رسد سرنخ های محیطی است. هر بار که یک سرنخ را دریافت می کنید، مغزتان شبیه سازی انجام می‌دهد و حرکت بعدی را پیشبینی می کند. سرنخ؟ متوجه میشوید که اجاق داغ است پیش بینی اگر به آن دست بزنم میسوزم پس نباید دستم را به آن نزدیک کنم سر نخ میبینید که چراغ راهنمایی سبز شده است پیش بینی اگر پایم را روی گاز بگذارم می توانم به شکلی ایمن تقاطع را رد کنم و به مقصدم نزدیکتر شوم بنابر این باید پا را روی پدال بگذارم. یک سرنخ را می‌بینید؟ آن را بر اساس تجربه پیشین دستبندی کرده و پاسخ متناسب را تعیین می‌کنید. همه اینها در یک لحظه رخ می‌دهند، اما نقش اساسی را در عاداتتان ایفا می‌کنند، زیرا پیش از هر اقدامی یک پیش‌بینی ذهنی انجام می‌گیرد. زندگی واکنشگرا به نظر می رسد اما در واقع مبتنی بر پیش بینی است. در سرتاسر سر روز در حال پیش بینی بهترین اقدام خود هستید که این کار بر اساس آنچه دیده اید و آنچه در گذشته جواب داده صورت میگیرد. شما دائما آنچه در لحظه بعد رخ میدهد را پیش بینی می کنید. رفتار ما به شدت به این پیش بینی ها بستگی دارد. به بیان دیگر رفتار ما به شدت به نحوه تفسیر ما از رخدادها بستگی دارد نه لزوما واقعیت عینی که این رخدادها در دل خودشان دارند امکان دارد دو نفر به یک سیگار نگاه کنند و در حالی که یکی از آنها برای کشیدن آن اشتیاق دارد دیگری حالش از بوی آن به هم بخورد یک سرنخ یکسان میتواند بسته به پیشبینی شما جرقه‌ی یک عادت خوب یا عادت بد را بزند علت های شما در واقع آن پیش‌بینی‌های خاصی هستند که از قبل انجام می‌گیرند این پیش‌بینی‌ها به احساساتی ختم می‌شوند که معمولا نحوه توصیف ما از یک تمایل، یک احساس، یک وسوسه، یک استرار هستند احساسات و عواطف سرنخ‌هایی که دریافت می‌کنیم و پیش بینی هایی که انجام میدهیم را به سیگنالی تبدیل می کنند که می توانیم اعمال کنیم آنها به ما کمک می کنند حواس کنونی خود را توجیه کنیم مثلا به صورت خداگاه یا ناخودآگاه می توانید میزان گرما یا سرمای بدن خود را حس کنید اگر دما به میزان یک درجه افت کند احتمالا هیچ کاری نخواهید کرد اما اگر ده درجه کم شود احساس سرما میکنید و یک لایه لباس بیشتر میپوشید. حس سرما سیگنالی است که شما را به اقدام وامی دارد. شما همواره سرنخها را حس میکنید اما فقط زمانی اقدام خواهید کرد که پیش بینی کنید در صورت فلان تغییر شرایط بهتر خواهد شد. وسوسه حسی است که میگوید دلتان برای فلان چیز تنگ شده است. یا بهمان چیز را در اختیار ندارید. تمایلی برای تغییر حالت درونیتان محسوب می شود. وقتی دم افت می کند، شکافی میان حس کنونی بدن شما و حسی که دوست دارید داشته باشید به وجود می آید. این شکاف، میان وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب دلیل لازم برای اقدام شما را فراهم می کند. وسفسه و تمایل، تفاوت میان جایگاه کنونی شما و جایگاهی است که دوست دارید در آینده داشته باشید. حتی کوچکترین اقدام نیز با انگیزه تغییر وضعیت کنونی و ایجاد یک حس متفاوت همراه است. وقتی پرخوری می‌کنید یا فندک می‌زنید یا به جستجو در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازید، خواسته واقعی شما چیپس سیگار یا یک مشت لایک نیست آنچه واقعا می‌خواهید ایجاد یک حس متفاوت است احساسات و عواطف ما هستند که می‌گویند آیا در وضعیت کنونی من ثابت بمانیم یا تغییری ایجاد کنیم آنها به ما کمک می‌کنند درباره بهترین اقدام تصمیم بگیریم شناسان دریافتند که وقتی اووتف و احساسات ما لتمه میبیند در واقع توانایی تصمیمگیری را از دست می دهیم. نمیدانیم باید دنبال چه چیزی برویم و از چه چیزی اجتناب کنیم. همونطور که آنتونیو داماسینو عصبشناس توضیح داده است، این احساسات است که به شما اجازه میدهد برچسب خوب، بد یا بی تفاوت را روی یک چیز بزنید. مخلص کلام این که تمایلات مخصوصی که حس می کنید و عادتهایی که انجام می دهید تلاشی برای براورد سازی انگیزه های زیر و اساسی شما هستند. هر زمان که یک عادت به شکلی موفق یک انگیزه را برآورده می کند این وسوسه در شما توسعه مییابد که آن را تکرار کنید. در گذر زمان یاد میگیرید گیرید که چک کردن رسانه های اجتماعی حس دوست داشته شدن را به شما می دهد یا مشاهده یوتیوب اجازه می دهد ترس هایتان را از یاد ببرید. عادت ها وقتی جذاب می شوند که آنها را به احساسات مثبت نسبت بدهیم و بتوانیم از این بینش به نفع خودمان بهره بگیریم چگونه ذهنیت مغز را عوض کنیم تا از عادت های بد. لذت ببرد. می توانید عادت های دشوار را برای خودتان جذاب کنید. البته اگر یاد بگیرید آنها را به تجربیات مثبت ارتباط دهید. گاهی اوقات به تنها چیزی که نیاز دارید اندکی تغییر دیدگاه و ذهنیت است. مثلا غالبا درباره همه کارهایی که باید در یک روز معین انجام دهیم فکر می کنیم، باید صبح زود بیدار شوید تا سر کار بروید، باید یک تماس دیگر را با مشتری برقرار کنید، باید برای خانواده شام درست کنید، اکنون تنها یک تغییر کوچک را برای این جملات در نظر بگیرید، مجبور به این کارها نیستید بلکه این کارها را انجام می دهید، صبح زود بیدار می شوید تا سر کار بروید، یک تماس دیگر را با مشتری برقرار می کنید. برای خانواده شام درست می کنید. صرفاً با تغییر اندک در ساختار جمله دیدگاهی که به هر رخداد دارید را عوض می کنید. دیگر این رفتارها را همچون باری روی دوش خود نمی بینید. بلکه آنها را به فرصت تبدیل می کنید. نکته کلیدی اینجاست. هر دو نسخه واقعیت که اینجا مطرح شدند درست است. باید آن کارها را انجام دهید و البته آنها را انجام می دهید. می توانیم برای همه ذهنیت هایی که انتخاب می کنیم دلیل و مدرک بیابیم. یکبار داستانی را درباره یک مرد ویلچری شنیدم. وقتی از او پرسیدند آیا محدودیت دشوار است؟ پاسخ داد: من به ویلچرم محدود نشدم. من با آن آزاد می شوم. اگر به خاطر ویلچرم نبود باید به تخت زنجیر می شدم و هیچگاه نمی توانستم خانه را ترک کنم. این تغییر دیدگاه باعث شده بود. زندگی روزمره او متحول شود. چارچوب مجدد عادتها به منظور برجست سازی اواید و به سایه بردن نقاط ضعف روی کردی سریع و سبک برای تغییر ذهنیت و افزایش جذابیت یک عادت است. ورزش بسیاری از افراد، ورزش را یک وظیفه چالش برانگیز می دانند که انرژی را تخلیه می کند و موجب خستگیتان می شود. می توانید آن را به عنوان روشی برای توسعه مهارت و ساختن بدن در نظر بگیرید. به جای اینکه به خودتان بگویید باید بروم صبحها بدوم، بگویید وقتش رسیده که استقامتم را بالا ببرم، و سریعتر شوم. امور مالی ذخیره سرمایه غالباً به ایثار و فداکاری مرتبط می شود. اما اگر یک حقیقت ساده را متوجه شوید، می توانید آن را نه یک محدودیت بلکه به ممسبهه آزادی قلمداد داد کنید. اگر در شرایط کنونی اندکی سخت بگیرید، آینده راحتتری خواهید داشت. پولی که این ماه ذخیره می کنید، قدرت خرید شما برای ماه بعد را افزایش می دهد. مدیتیشن هر کسی که مدیتیشن را به مدت بیش از سه ثانیه امتحان کرده باشد، می داند در صورتی که انحرافهای ناگزیر به ذهنتان رسوخ کنند، این پروسه بسیار دشوار خواهد شد. اما وقتی بدانید که هر مداخله به شما فرصت می دهد تا به زندگی عادی برگردید، بعد تجربه بازگشت به مدیتیشن را از سر همین درماندگی و دشواری به یک لذت تبدیل خواهد شد. انحراف خوب است، زیرا برای اجرای مدیتیشن به انحراف نیاز دارید. های پیش از وقوع بسیاری از افراد پیش از ارائه های بزرگ یا رقابت در یک رخداد مهم حس استراب دارند. آنها تنفس سریعتر، ضربان بالاتر و آشفتگی بیشتر را تجربه می‌کنند. اگر این احساسات را منفی برداشت کنیم، حس تهدید و تنش به ما دست خواهد داد. اما اگر این احساسات را مثبت قلم داد کنیم، می‌توانیم با سلاست و ظرافت به آن پاسخ بگوییم. می‌توانید جمله مسترب هستم را به هیجان زده هستم و آدرنالین خونم بالا رفته تا توانم بهتر تمرکز کنم. تغییر دهید. این تغییرات ذهنی کوچک جادو نمی کنند اما می توانند به تغییر احساساتتان درباره یک عادت یا موقعیت به خصوص کمک کنند. اگر دوست دارید یک گام جلوتر بروید، می توانید رسم انگیزشی ایجاد کنید. کافیست عادت‌هایتان را به یک کار لذت بخش ارتباط دهید. سپس می‌توانید هر زمان که به مقداری انگیزه نیاز دارید از آن سرنخ بهره بگیرید. مثلا اگر همواره یک آهنگ یکسان را پیش از سکس پخش می‌کنید، کنید این این موسیقی و اقدام به یکدیگر پیوند می‌خورند. هر زمان که می‌خواهید در چنین مودی قرار بگیرید، کافیست موسیقی پخش شود. ایدل مور، بکسار و نویسنده اهل پیتزبرگ بدون اینکه خودش بداند از یک استراتژی مشابه بهره می برد او نوشت به یک نتیجه عجیب رسیدم همین که موقع نوشتن هدفون را روی گوشم میگذارم تمرکز و توجهم بالا میرود حتی لزومی ندارد که موسیقی پخش کنم او بدون اینکه بداند خودش را شرطی می کرد در ابتدا هدفون را روی گوش خود میگذاشت، موزیکی که دوست داشت را پخش می کرد و تمرکزش روی کار قرار می گرفت. پس از اینکه این کار را پنج، ده و بیست بار انجام داد، گذاشتن هدفون روی گوش به سرنخی تبدیل شد که ناخداگاه آن را به افزایش تمرکز ارتباط میداد. این تمایل به صورت طبیعی از پی این اقدام می آمد. ورزشکارها نیز از های مشابه در ذهنیتشان بهره میگیرند تا بتوانند خوب کار کنند. در طول دوران حرفه‌ای خودم به عنوان بازیکن بیسبال یک روش و اسلوب خاص را برای حرکات کششی و پرتاب توپ پیش از شروع بازی توسعه دادم. کل این پروسه حدود ده دقیقه طول می کشید و هر بار همان روش همیشگی را تکرار می کردم. در حالی که این روش بدنم را برای بازی گرم می کرد، از نظر ذهنی نیز من را در وضعیت مناسبی قرار می داد. این رسم پیش از بازی را به افزایش حس رقابت طلبی و تمرکز خودم ارتباط داده بودم. حتی اگر از پیش انگیزه برای بازی نداشتم وقتی این کار را انجام میدادم در مود بازی قرار می گرفتم می توانید همین استراتژی را تقریبا برای هر هدفی آداپته کنید فرض کنید می رضایت عمومی بیشتری داشته باشید چیزی پیدا کنید که شما را واقعا خوشحال کند مثلا بازی کردن با سگ یا نشستن در یک حمام داغ و سپس یک روتین کوتاه بسازید تا هر بار پیش از کار مورد علاقه تان آن را انجام دهید. این روتین کوتاه می‌تواند شامل کشیدن سه نفس عمیق و لبخند زدن باشد. سه نفس عمیق، لبخند، بازی با سگ، تکرار همین پروسه. سرانجام به جایی می رسید که این روتین تنفس و لبخند را به حال خوب خودتان ارتباط می دهید. این پروسه به سر نخی برای حس رضایت شما تبدیل می شود وقتی آن را جا انداختید می توانید هر بار که به تغییر روحی نیاز دارید از آن بهره بگیرید سر سرکار استرس دارید سه نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید در زندگی قصه دارید سه نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید وقتی یک عادت شکل گرفت، سرنخ آن می تواند تمایل را در وجودتان ایجاد کند، حتی اگر ارتباط چندانی با موقعیت اصلی و اولیه نداشته باشد. کلید یافتن و اصلاح دلایل عادتهای بدتان این است که ذهنیت مربوط به آنها را عوض کنید. این کار ساده نیست، اما اگر بتوانید پیشبینی هایتان را تغییر دهید، می توانید یک عادت دشوار را به یک موقعیت جذاب تبدیل کنید. خلاصه فصل عکس قانون دوم تغییر رفتار میگوید آن را غیر جذاب کنید. هر رفتار دارای یک تمایل سطحی و یک انگیزه اساسی و تر است. های شما راهکارهای مدرن برای تمایلات دیرین هستند. عامل عادتهای شما در واقع همان پیشبینی است که قبل از اقدام انجام می دهید. این پیشبینی نوعی احساس در شما به وجود می آورد. عواید اجتناب از یک عادت بد را برجسته کنید تا از جذابیت آن عادت در نظر شما کاسته شود. عادتها، وقتی جذاب میشوند که آنها را به احساسات مثبت نسبت دهیم و وقتی از جذابیتشان کاسته می شود که به احساسات منفی ارتباط پیدا کنند پیش از یک عادت دشوار کاری را انجام دهید که از آن لذت میبرید و همین موضوع یک رسم انگیزشی را برای شما ایجاد میکند نحوه ایجاد یک عادت خوب قانون اول آن را شفاف و آشکار کنید یک یک کارت امتیازی عادت را پر کنید عادت های کنونی خود را یادداشت کنید تا نسبت به آنها آگاه شوید دو یک از مقاصد اجرایی بهره بگیرید من رفتار جای خالی را در زمان جای خالی و در موقعیت مکانی جای خالی انجام خواهم داد. سه یک، از زنجیر سازی عادت بهره بگیرید. پس از عادت فعلی، آن عادت جدید را انجام خواهم داد. چهار یک، محیط خود را طراحی کنید. سر نخهای عادت خوب را در معرض دید بگذارید. قانون دوم، آن را جذاب کنید. یک دو از جمبندی خواسته ها بهره بگیرید. اقدامی را که دوست دارید با اقدامی که باید انجام دهید جفت کنید. دوی دو به فرهنگی بپیوندید که رفتار مطلوب شما به مسابه رفتار معمول آنها باشد. سه دو یک رسم انگیزشی بسازید.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 اوايد اجتناب از عادت های بدتان را برجسته کنید. قانون سوم آن را دشوار کنید. قانون چهارم آن را عامل نارضایتی کنید. می توانید یک نسخه کامل و قابل پرینت از این جداول را از سایت نشر نوین، به آدرس نشر نوین صفحه مربوط به کتاب های اتمی دانلود کنید در اولین روز کلاس جری اولزمن استاد دانشگاه فلوریدا دانشجویان اکاسی خود را به دو گروه تقسیم کرد او توضیح داد که همه افراد حاضر در سمت چپ در گروه کمیت قرار دارند آنها فقط بر اساس مقدار کاری که تولید کرده اند نمره می گیرند. در روز پایانی کلاس تعداد عکس هایی که توسط هر دانشجو گرفته شده را جمع خواهد زد 100 عکس معادل نمره ای 90 عکس معادل نمره بی هشتاد عکس معادل نمره سی و الی آخر. اما همه افراد سمت راست اتاق در گروه کیفیت قرار دارند. آنها فقط بر اساس میزان خوب بودن کارشان نمره می گیرند. همین که یک عکس را در طول ترم بگیرند کافی است اما برای دریافت نمره A باید عکس نزدیک به ایدئال باشد. در انتهای ترم و در کمال تعجب مشاهده کرد که بهترین اکسها توسط گروه کمیت گرفته شدند. در طول ترم این دانشجویان مشغول عکس گرفتن آزمودن کممپزیزیون ها و نورپردازی های مختلف آزمودن روش های مختلف در اتاق تاریک و یادگیری از اشتباهات بودند. در مسیر گرفتن عکس های متنوع آنها مهارت هایشان را پرورش دادند. در این میان گروه کیفیت گوشه ای و درباره کار ایدئال، گمان زنی می کردند. در نهایت هم غیر از تیوری های نشده و عکس های میان مایه چیز زیادی برای ارائه تلاش هایشان نداشتند. به سادگی می توان در مسیر تلاش برای یافتن برنامه بهینه تغییر گرفتار شد. سریع ترین راه برای کاهش وزن، بهترین برنامه برای ازول سازی، ایده ایدئال برای کسب و کارهای جانبی، آنقدر درگیر بهترین روش ها که هیچگاه همت نمی کنیم و قدم بر نمی داریم. همانطور که وولتر اشاره کرد بهتر بودن دشمن وضعیت فعلی است. این موضوع را در قالب تفاوت میان حرکت و عمل توضیح می دهم. هر دو ایده مشابه به نظر می رسند اما یکسان نیستند. وقتی در حرکت هستید در حال طرح ریزی و استراتژیسازی سازی و یادگیری هستید. این کارها همگی خوب هستند، اما به نتیجه ختم نمی شوند. از سوی دیگر، عمل کردم رفتار است که به نتیجه منجر خواهد شد. اگر بیست ایده را برای مقالات آتی خودم تراحی کنم، این یک حرکت است. اگر واقعا بنشینم و یک مقاله بنویسم، عمل کردم. اگر به دنبال یک برنامه رژیمی بهتر بروم و تعدادی کتاب در این مورد بخوانم، حرکت کردم. اگر در واقعیت یک وعده غذای سالم بخورم، عمل کردم. گاهی اوقات حرکت مفید است، اما هیچگاه به خودی خود نتیجه تولید نخواهد کرد. مهم نیست که چند بار با یک مربی خصوصی صحبت کنید. چون این حرکت بدنتان را متناسب کند. فقط اقدام به ورزش است که نتیجه مد نظرتان را به شما خواهد داد اگر حرکت به نتیجه منجر نمی‌شود پس چرا این کار را انجام می‌دهیم گاهی اوقات این کار را انجام می‌دهیم چون واقعا به برنامه یا آموزش بیشتر نیاز داریم اما در اغلب موارد به این خاطر سراغ حرکت می‌رویم که حس پیشروی را برای ما ایجاد می‌کند بدون اینکه با خطر شکست مواجه شویم اکثر ما متخصص اجتناب از نقد و منتقدان هستیم شکست یا قضاوت عمومی حس خوبی ندارد بنابراین دوست داریم از موقعیت هایی که به این شرایط منجر می‌شوند دوری کنیم و همین بزرگترین دلیل گرایش ما به حرکت و دوری از عمل است. می خواهیم شکست را به تاخیر بیاندازیم. وقتی در حال حرکت هستید، خیلی راحت می خودتان را قانع کنید که در حال پیشرفت هستید. با خودتان فکر می کنید، همین الان با چهار مشتری احتمالی صحبت کردم. خیلی خوب است. دارم در مسیر درست حرکت می کنم یا درباره تعدادی ایده برای کتاب آینده‌ام فکر کردم همه چیز دارد شکل می گیرد حرکت به شما این حس را می دهد که در حال پیشبرد امور هستید اما در واقع صرفا خودتان را برای انجام کار آماده می کنید وقتی آماده سازی نقش دفع وقت را پیدا کند باید رویه خود را تغییر دهید نمیخواهید که صرفا برنامه ریزی کنید بلکه قرار است گام بردارید اگر دوست دارید بر یک عادت مسلط شوید نکته کلیدی تکرار است نه اینکه دنبال ایدئال باشید لزومی ندارد همه ویژگی های یک عادت جدید را ترسیم کنید صرفا کافی است آن را تمرین کنید این اولین برداشت ما از قانون سوم است، کافی است که خودتان را وارد کار کنید. برای شکل دهی به یک عادت جدید، چقدر زمان نیاز دارید؟ شکل دهی به عادت پروسه است که رفتار به تدریج و از طریق تکرار در شما نهادی نمی شود. هرقدر یک فعالیت بیشتر تکرار شود، ساختار مغزتان برای اجرای آن بهینه‌تر خواهد شد. عصبشناسان این پدیده را نیرومند سازی طولانی مدت مینامند که به تقویت ارتباط میان نورون‌های مغز بر اساس الگوهای جدید فعالیت اشاره می‌کند. با هر تکرار سیگنالدهی سلول به سلول بهبود می‌یابد و ارتباطات عصبی نزدیکتر می شود. این پدیده که ابتدا توسط دونالد هب اصحب در سال 1949 توصیف شد، تحت عنوان قانون هب شناخته می شود. نورانهایی که با هم عمل می کنند، با یکدیگر ارتباط دارند. تکرار یک عادت موجب تغییرات فیزیکی در مغز می شود. ها دارای مخچه بزرگتری نسبت به افراد معمولی هستند، که برای حرکات فیزیکی نظیر حرکت انگشت روی سیم گیتار و کشیدن آرشه روی ویولن ضرورت دارد در حالی که ریاضیدان ها میزان ماده خاکستری را در لوب آهیانه‌ای پایین خود افزایش دادند که نقش کلیدی در محاسبه ایفا می کند اندازه آن مستقیما به میزان تجربه فرد بستگی دارد هرقدر ریاضی با تجربه تر و مسن تر باشد میزان افزایش ماده خاکستری آن بیشتر است وقتی دانشمندان مغز راننده های تاکسی لندن را تحلیل کردند متوجه شدند هیپوکامپ آنها منطقه ای از مغز که با حافظه فضایی درگیر است بسیار بزرگتر از افرادی است که راننده ی تاکسی نیستند جالبتر اینکه با بازنشسته شدن راننده اندازه هیپوکامپ او کوچکتر می شود همانند ازولات بدن که به تمرینات منظم واکنش نشان میدهند بخش های خاصی از مغز در صورت بهره برداری تقویت و در صورت رها شدن تضعیف می شوند البته خیلی پیش از اینکه شناسان سراغ این موضوع بروند اهمیت تکرار در شکل دهی عادت‌ها شناخته شده بود. در سال 1860، فیلسوفی انگلیسی به نام جورج لویس اشاره کرد که یادگیری یک زبان جدید، نواختن یک ساز یا اجرای حرکاتی که با آنها عادت نداریم، دشواری زیادی دارند، زیرا حواس ما باید از مسیرهایی عبور کنند که هنوز ساخته نشده‌اند و جا دادند. اما فقط با تکرار مداوم است که این مسیر کوتاه می شود و دشواری از بین میرود. اقدامات ما آنقدر ناخودآگاه می شوند که می توانند حتی در صورت مشغولیت ذهن به چیزهای دیگر نیز انجام بگیرند. هم منطق و هم اسناد علمی روی این موضوع توافق دارند. تکرار فرمی از تغییر است. هر بار که یک عمل را تکرار می کنید، یک مدار عصبی به خصوص و مرتبط با آن عادت را فعال می کنید. به ترتیب، تکرار صرف یکی از کلیدی ترین است که می توانید برای کدگزاری یک عادت جدید بردارید. به همین دلیل، دانشجویانی که تعداد زیادی عکس گرفته بودند، توانستند مهارتهایشان را بهتر از دانشجویانی که صرفا درباره های ایدئال تئوری پردازی میکردند پرورش دهند یکی از گروهها مشغول فعالیت بود و دیگری صرفا یادگیری منفعلانه داشت یکی عمل میکرد و دیگری حرکت ی عادات مسیر مشابهی را طی کنند و از تلاش و زحمت به رفتار ناخداگاه میرسند که این پروسه را اتوماتیسیته مینامند اوتوماتیسیته قابلیت اجرای یک رفتار است بدون اینکه درباره ی هر مرحله از آن فکر کنیم یعنی زمانی که ذهن ناخداگاه ما امور را در دست میگیرد عادت ها بر اساس تعداد دفعات وقوعشان شکل می گیرند نه با زمانی که رخ می دهند یکی از رایجترین ترین سوالاتی که میشنوم این است که ایجاد یک عادت جدید چقدر زمان میبرد؟ اما سوال واقعی افراد باید اینگونه باشد که چقدر باید یک کار را تکرار کنم تا عادت جدیدی شکل بگیرد؟ منظور تعداد تکرارهای مورد نیاز است تا یک عادت به صورت ناخودآگاه در شما شکل بگیرد. در زمینه شکل دهی به عادت گذر زمان نمیتواند برای شما جادو کند. فرقی نمی کند که 21 روز یا سی روز یا 300 روز گذشته باشد. آنچه اهمیت دارد نرخ تکرار یک رفتار است. می توانید یک کار را دو بار طی 30 روز انجام دهید یا همان کار را 200 بار تکرار کنید. این تعداد دفعات وقوع است که تفاوت را رقم میزند. عادت‌های های کنونی شما در پی صدها اگر نگوییم هزاران تکرار جا افتادند. عادت‌های جدید نیز به همین میزان تکرار نیاز دارند. باید تلاش های موفقیت آمیز را به تعداد کافی و متوالی داشته باشید تا رفتار کاملا در ذهنتان جا بیفتد و از خط عادت عبور کنید. در عمل، مهم نیست که چقدر طول می کشد تا یک عادت در ناخودآگاه شما جای بگیرد. نکته مهم اقدامات مورد نیاز از سوی شما برای پیشروی بیشتر در این عرصه است. اینکه یک اقدام کاملا خودکار و ناخودآگاه باشد، اهمیت کمتری دارد. برای ایجاد یک عادت، باید آن را تمرین کنید. و موثرترین راه برای عملی کردن یک رخداد، این است که به قانون سوم تغییر رفتار مقید بمانید، آن را ساده کنید. فصول پیش رو به شما نشان میدهند که چطور باید چون این کاری را انجام دهید. خلاصه فصل قانون سوم تغییر رفتار میگوید آن را ساده کنید؟ موثرترین فرم یادگیری تمرین است، نه برنامه ریزی. روی عمل تمرکز کنید، نه حرکت. شکل دهی به عادت پروسه است که در آن رفتار به تدریج و از طریق تکرار به سمت ناخداگاه حرکت می کند. مدت زمانی که یک عادت را اجرا می کنید، به اندازه تعداد دفعاتی که آن عادت را انجام می دهید، اهمیت ندارد جرد دایموند، انسان شناس و عزیز شناس، در کتاب برنده جایزه خود تحت عنوان توفنگ ها،, ها، و فولاد به یک حقیقت ساده اشاره می کند قاره های مختلف اشکال متفاوتی دارند در نگاه اول این جمله بدیهی و چندان مهم به نظر می رسد. اما مشاهده شده است که تأثیر امیقی را بر رفتار انسانی می گذارد. همچون مستطیلی است که طول آن در راستای شمالی جنوبی قرار دارد. یعنی قاره های آمریکای شمالی و جنوبی را به شکل یک تود زمین عریض و چاق نمی بینیم، بلکه یک تود زمین بلند و باریک را می سزند. همین امر در مورد آفریقا هم صدق می کند. در حالی که تود زمین سازنده قاره های اروپا، آسیا و اوغیانوسیه برعکس است. این خشکی های وسیع بیشتر شکل غربی شرقی به خود گرفتند. به گفته دایموند، این تفاوت نقش مهمی را در گسترش کشاورزی این قارهها. ایفا می کند. وقتی کشاورزی کم کم در پیرامون جهان توزیع شد، کشاورزها برای گسترش مسیرهای شرقی غربی کار ساده تری را نسبت به مسیرهای شمالی جنوبی داشتند، زیرا موقعیت‌های دارای عرض جغرافیایی یکسان معمولا دارای اقلیم، میزان نور خورشید و بارش و همچنین تغییر فصول یکسانی هستند. این عوامل به کشاورزان اروپا و آسیا اجازه می دهند که تعداد محصول کمتری را اهلی کنند و همانها را در گسترره از زمینها از فرانسه گرفته تا چین پرورش دهند. طول قاره اروپا و آسیا در جهت شرقی غربی است. طول اصلی دو قاره آمریکا و آفریقا شمالی جنوبی است. یعنی در بالا و پایین آمریکا، اقلیم‌های گسترده‌تر و متنوع‌تری را نسبت به اروپا و آسیا مشاهده می‌کنیم. در نتیجه کشاورزی اروپا و آسیا تقریباً با سرعتی دو برابر نسبت به جاهای دیگر گسترش می‌یابد. رفتار کشاورزان حتی طی گذشت صدها یا هزاران سال با توجه به میزان استکاک محیط محدود می‌شود. در مقام مقایسه با سفر از شمال به سمت جنوب اقلیم تغییرات بزرگتری را به خود میبیند. کافیست تفاوت آب و هوای فلوریدا و کانادا را تجسم کنید. امکان دارد مستعدترین کشاورز دنیا باشید اما باز هم نمیتوانید پرتغال فلوریدا را در زمستان کانادا پرورش دهید. برف نمیتواند جایگزین خوبی برای خاک باشد. به منظور گسترش محصولات در مسیرهای شمالی جنوبی کشاورزان باید هر زمان که اقلیم تغییر کرد گیاهان جدیدی را بیابند و آنها را اهلی کنند. در نتیجه در آسیا و اروپا کشاورزی با سرعت دو تا سه برابر نسبت به آمریکا توسعه می با گذشت چندین قرن همین تفاوت کوچک تاثیری بزرگ به همراه داشته است. افزایش تولید غذا باعث شده است رشد جمعیت به شکل سریعتری انجام گیرد. با حضور افراد بیشتر این فرهنگها توانستند ارتشهای قدرتمند تری را شکل بدهند و به شکل بهتری برای توسعه فناوری‌های جدید مجهز شدند. تغییرات خیلی کوچک آغاز شدند. یک محصول کشاورزی که اندکی گسترده تر توضیح شد. جامع که اندکی سریعتر رشد کرد. اما در نهایت توانست تغییرات قابل توجهی را در گذر زمان به وجود آورد. گسترش کشاورزی نمونه ای از قانون سوم تغییر رفتار را در مقیاس جهانی فراهم می کند. عقل سلیم میگوید انگیزش، یکی از نکات کلیدی در تغییر عادت است. شاید اگر واقعا آن را بخواهید بتوانید انجامش دهید. اما حقیقتا انگیزه اصلی ما این است که یک کار راحت باشد و بتوانیم در این تنبلی آن را انجام دهیم و عل رغم اینکه توصیه های بهرهوری این موضوع را رد می کنند، اما واقعا یک استراتژی هوشمندانه است، و نمی توانیم آن را احمقانه بپنداریم. انرژی ارزشمند است و مغز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که هر زمان امکانش هست آن را حفظ کند. این ذات انسان است که از قانون کمترین تلاش پیروی می‌کند. قانونی که می‌گوید بین دو گزینه مشابه افراد طبیعتا به سمت گزینه‌ای گرایش دارند. که به کار کمتری احتیاج داشته باشد مثلا بین گسترش مزرعه به سمت شرق که می محصول کنونی را در آنجا هم پرورش دهید و گسترش محصول به سمت شمال که باید با یک اقلیم متفاوت مواجه شوید طبیعتا اولی انتخاب می شود در میان تمام اقدامات ممکن که می انجام دهیم آن موردی انتخاب و پسندیده می شود که بتواند بیشترین میزان ارزش را با کمترین تلاش تحویل دهد. انگیزه ما این است که کار ساده را انجام دهیم. هر اقدام به مقدار معینی انرژی نیاز دارد. هرقدر انرژی بیشتری برای شروع کار نیاز باشد، احتمال رخ دادن آن کمتر است. اگر هدفتان این است که روزی صد حرکت دراز و نشست انجام دهید، به انرژی زیادی نیاز دارید. در ابتدا که انگیزه دارید و هیجان زده هستید، می توانید قدرت لازم برای شروع را جمع آوری کنید. اما پس از چند روز، این تلاش زیاد، حس خستگی و درماندگی را در شما ایجاد می کند. در حالی که اگر با خودتان قرار بگذارید، روزی یک درازونش است انجام دهید به انرژی خاصی برای شروع کار نیاز ندارید. هرقدر هم یک عادت به انرژی کمتری نیاز داشته باشد احتمال وقوع آن بیشتر است. به هر رفتاری که بخش زیادی از زندگیتان را اشغال می کند نگاه کنید. متوجه خواهید شد که برای اجرای آن به انگیزه خیلی زیادی نیاز ندارید. عادت‌هایی مثل وررفتن با گوشی، بررسی ایمیل و مشاهده تلویزیون بخش زیادی از وقت ما را می‌گیرند چون می‌توانند با کمترین تلاش ممکن انجام شوند. انجام آنها به شدت راحت است. از یک منظر، هر عادت همچون مانعی بر سر رسیدن به خواسته‌های تن است. رژیم گرفتن مانعی برای رسیدن به تناسب اندام است. مدیتشن مانعی برای رسیدن به آرامش است نگارش مانعی برای رسیدن به تفکر شفاف است شما خود عادت را نمیخواهید آنچه حقیقتا به دنبالش هستید نتیجه حاصل از آن عادت است هرقدر مانع بزرگتر باشد یعنی انجام عادت دشوارتر باشد استکاک بیشتری میان شما و وضعیت مطلوبتان به وجود می آید. به همین دلیل باید آدتهایتان را آنقدر ساده کنید تا بتوانید حتی زمانی که حس انجامش نیست و روی فرم نیستید هم آنها را انجام دهید. اگر بتوانید های خوب مد نظرتان را ساده تر کنید احتمال انجام آنها بیشتر خواهد شد. اما آن لحظاتی که عکس مطالب فوق را ثابت می کنیم چطور؟ اگر اینقدر تنبل هستیم پس دستاوردهای دشوار ها همچون بزرگ کردن بچه یا شروع یک کسب و کار یا فتح قله اورست ای چگونه حاصل می شود؟ قطعا قادر به انجام کارهای بسیار دشوار هم هستید مشکل اینجاست که بعضی روزها حس و حال انجام کارهای دشوار را دارید و بعضی روزها هم بریده اید و دوست دارید تسلیم شوید. در روزهای دشوار باید تا می توانید مسائل را به نفع خودتان رقم بزنید تا توان غلبه بر چالشهای طبیعی که زندگی پیش رویتان می گذارد به وجود بیاید. هرقدر استکاک کمتری را احساس کنید شخصیت قدرتمند درون شما به شکلی ساده تر بروز خواهد کرد. ایده ای آن را ساده کنید، این نیست که فقط کارهای ساده را انجام دهید. حرف ما این است. اجرای اموری که میتوانند در دراز مدت داشته باشند را حتی امکان ساده تر کنید. چگونه با تلاش کمتر به دستاورد بیشتر برسیم؟ فرض کنید، یک شیلنگ باغبانی دستتان است که از وسط خم شده و مقداری آب می تواند از میان آن عبور کند اما فشار آب چندان زیاد نیست اگر بخواهید میزان نرخ آب عبوری از شیلنگ را افزایش دهید دو گزینه پیش روی خود دارید اولین گزینه این است که شیر آب را بیشتر باز کنید تا آب با فشار بیشتری در شیلنگ جریان یابد دومین گزینه این است که خیلی ساده آن خمیدگی شیلنگ را از بین ببرید و بگذارید که آب جریان طبیعی خود را پیدا کند. تلاش برای افزایش انگیزه و پایبندی به یک عادت دشوار، مثل همین تلاش برای واداشتن جریان آب در یک شیلنگ خمیده می‌ماند. می‌توانید این کار را انجام دهید، اما به تلاش زیادی نیاز دارید. و تنش در زندگی شما افزایش میابد، در حالی که ساده کردن عادتها مثل این میماند که خمیدگی شیلنگ را از بین ببرید و صافش کنید. به جای این که برای غلبه بر استکاک‌های زندگیتان تلاش کنید، سعی کنید از میزان آنها بکاهید. یکی از موثرترین راه‌های کاهش استکاک عادتها این است که طراحی محیطی را تمرین کنید. در فصل شش درباره طراحی محیط صحبت کردیم و آن را روشی برای قرار دادن سر نخوا در معرض دید برشمردیم. اما در کنار آن می توانید محیط خود را به گونه بهینه سازی کنید که اقدام به انجام عادت برایتان تر شود. مثلا وقتی تصمیم به اجرای یک عادت جدید گرفتید، بهتر است آن را در جایگاهی قرار دهید که هم با روتین کنونی زندگی شما باشد. وقتی عادتها در جریان زندگی کنونی شما جا بگیرند، شکل دهی به آنها ساده تر می شود. اگر باشگاه در مسیر رفت و آمد شما به محل کار قرار داشته باشد، مراجعه به آن برای شما ساده تر خواهد بود. زیرا توقف در آنجا استکاک چندانی را در سبک زندگی شما ایجاد نخواهد کرد در مقام مقایسه اگر باشگاه خارج از مسیر حرکتی روزمره شما باشد ولو اینکه یکی دو خیابان آن طرفتر باشد باید از مسیر اصلی خود خارج شوید تا بتوانید به آنجا برسید نکته ای که احتمالاً تاثیر بیشتری داشته باشد کاهش استکاک درون خانه یا محیط کار است. غالبا سعی می‌کنیم عادتها را در محیطهایی که استکاک بالایی دارند شروع کنیم. مثلا وقتی برای صرف شام با دوستانمان بیرون رفته ایم، سعی می‌کنیم از رژیم سفت و سختمان پیروی کنیم. سعی می‌کنیم در یک خانه شلوغ و پر و صدا کتاب بنویسیم. سعی می‌کنیم هنگام استفاده از گوشی هوشمند که پر از انحراف‌های متنوع است، روی کارمان تمرکز کنیم. این کار درست نیست. می توانیم نقاط تنش‌زایی که مانعمان هستند را از پیش رو برداریم. این دقیقا همان کاریست که تولید کنندگان لوازم الکترونیکی ژاپن در دهه 70 میلادی شروع کردند. جیمز سوراویکی در مقاله‌ای که با عنوان همواره بهتر بودن در نیویورکر چاپ شده است می نویسد، ژاپنی بر مفهومی تحت عنوان تولید ناب تکید داشتند که بیوقفه روی از بین بردن انواع ضایعات و اطلافات در پروسه تولید تکید می کند و حتی دست به طراحی مجدد محیط کار میزند تا کارگران مجبور نباشند برای برداشتن ابزارهای مورد نیازشان دائم بچرخند، به بدین ترتیب زمانشان را تلف کنند در نتیجه این طرح کارخانه های ژاپنی بهینه تر شدند و اطمینان محصولات ژاپنی نسبت به محصولات آمریکایی افزایش یافت در سال 1974 تماس های خدماتی برای تلویزیون رنگی های ساخت آمریکا 5 برابر بیشتر از تلویزیون های ژاپنی بود در سال 1979 کارگران آمریکایی سه برابر بیشتر از ژاپنیها برای مونتاژ دستگاهها وقت گذاشتند. دوست دارم این استراتژی را تحت عنوان افزودن با تفریق نام ببرم. کمپانیهای ژاپنی به دنبال همه نقاط تنش زا و استکاکهای پروسه تولید می‌گشتند و آن را حذف می‌کردند. وقتی میزان تلاش‌های تلف شده کاهش یافت، بر تعداد مشتریان و درآمد آنها افزوده شد به همین ترتیب وقتی نقاط تنشزا و عامل اطلاف زمان و انرژی خودمان را از بین میبریم بریم می توانیم با تلاش کمتر به دستاورد بیشتر برسیم به همین دلیل مرتب کردن حس خوبی به آدم می دهد در آن واحد رو به جلو می رویم و بار شناختی که محیط روی دوشمان می گذارد را سبکتر می کنیم اگر به محصولاتی نگاه کنیم که بیشترین میزان اعتیاد را به وجود میآورند متوجه می شویم یکی از دستاوردهای این کالاها و خدمات از بین بردن های زندگی ولو به میزان اندک است سرویسهای تحویل غذا کاری می کنند که استکاک ناشی از خرید خور کاهش یابد ابهای دوستیابی. کاری می کنند که استکاک برقراری رابطه اجتماعی با دیگران کم شود. سرویس های تاکسی آنلاین استکاک رفت و آمد در شهر را کاهش می دهند. ارسال پیامک کاری می کند استکاک و دشواری پست یک نامه کاهش بیابد. همانطور که تولید کننده ی تلویزیون ژاپنی محیط کارش را تغییر می دهد تا کارگران حرکات اضافی کمتری انجام دهند، کمپانی‌های موفق هم محصولاتشان را به گونه‌ای تر راهی می‌کنند که بیشترین موانع و گام‌های ممکن را خودکار حسف یا ساده کنند. آنها تعداد جاهای خالی هر فرم را کاهش می‌دهند، تعداد کلیک‌های لازم برای ایجاد یک حساب را کمتر می‌کنند، محصولاتشان را با دستورالعمل‌های بسیار ساده و قابل فهم ارائه کرده. یا پروسه انتخاب را برای مشتریانشان ساده‌تر می‌کنند. وقتی اولین دستیارهای صوتی عرضه شدند، محصولاتی نظیر گوگل هوم، آمازون اکو و اپل هوم پاد از دوستم پرسیدم که کدام ویژگی این محصولات نظرش را جلب کرده است. جواب داد همین که بگویی برایم چند تا موزیک کانتری پخش کن خیلی راحتتر است تا بخواهی گوشیت را بیرون بیاوری. اپ موزیک را باز کنی و روی یک فهرست پخش بزنی. البته تا همین چند سال پیش هم دسترسی نامحدود به موسیقی از طریق گوشی خودش یک رویا بود. چون باید تا مغازه می رفتید و از سیدی موزیک مورد علاقه خود را خریداری می کردید. در کسب و کار دائما در جستجوی این هستیم که راههای سادهتری را برای دستیابی به همان نتایج پیشین بیابیم دولتها نیز به شکلی موثر از های مشابه بهره گرفتند وقتی دولت بریتانیا خواهان افزایش نرخ مالیات بود روی رویکرد دریافت اظهارنامه مالیاتی را عوض کرد پیشتر آنها صفحه ای را به شهروندان می‌فرستادند که اظهارنامه را می‌شد از داخل آن دریافت کرد اما از آن مقطع فرم با یک لینک آنلاین مستقیم به انگلیسی ها ارسال شد. همین حرکت ساده و کاهش یک مرحله ای در پروسه نرخ پاسخگویی را از 19 ممیز دو دهم ده به 23 ممیز چهار دهم ده درصد افزایش داد. برای یک کشور نظیر انگلستان، همین افزایش چند درصدی به مسابقه افزایش چند میلیونی در درآمد مالیاتی است. ایده مهوری ایجاد محیطی است که بتوان در آن کار صحیح را به ساده ترین شکل ممکن انجام داد. عمده نبرد ما برای ایجاد عادت بهتر به یافتن مسیرهایی برای کاهش استکاک عادت خوب و افزایش استکاک عادت های بد ختم می شود. آماده سازی محیط برای بهر در آینده اوسوالد ناکولز یک توصیه دهنده اطلاعات در ناچز میسیسیپی است او همچنین و افرادی است که قدرت آماده سازی محیط را درک می کند ناکولز با پیروی از یک استراتژی که از آن تحت عنوان بازنشانی اتاق نام برد عادت‌های تمیزکاری خود را شکل داد. مثلا وقتی تماشای تلویزیون را به پایان می‌رساند، کنترل را روی پایه تلویزیون قرار می‌داد. کوسن‌های روی مبل را مرتب و ملحفه را تا میکرد. وقتی از ماشین بیرون می‌آمد، هر گونه زباله را دور می‌ریخت. هر زمان که می‌خواست دوش بگیرد، هنگام گرم شدن دوش، توالت را تمیز می‌کرد. همانطور که خودش می گوید، بهترین زمان برای تمیز کردن توالت قبل از دوش گرفتن است. چون در هر حال می‌خواستید خودتان را بشویید. هدف از بازنشانی هر اتاق این نیست که پروسه مرتب کردن را پس از هر اقدام انجام دهید، بلکه می‌خواهید خودتان را برای اقدام بعدی آماده کنید. می می‌نویسد. وقتی وارد اتاقی می شوم، همه چیز سر جای خودش قرار دارد. زیرا این کار را هر روز و در همه اتاقها انجام میدهم و تمام وسایلم همیشه در شرایط خوبی قرار دارند. افراد فکر میکنند خیلی سخت کوش و دقیق هستم، اما حقیقتا خیلی هم تنبلم، اما این تنبلی را به شکل فعالانه بروز میدهم. اینطوری در زمان صفه جویی می شود. هر زمان که محیط را برای هدف مد نظر سازماندهی می کنید برای اقدام بعدی حاضر و آماده می شود. مثلا همسرم یک جعبه حاوی کارت تبریک دارد که بر اساس موقعیت های مختلف چیده شدهاند: تولد، همدردی، ازدواج، فارغ و تحصیلی و موارد دیگر. هر زمان که لازم باشد، کارت مناسب را برمیدارد و ارسال می کند. او مهارت بسیار زیادی در ارسال کارت و به خاطر آوردن مناسبت ها دارد. زیرا استکاک مربوط به انجام این کار را کاهش داده است. سالها بود که خودم این مشکل را داشتم. مثلا بچه یک نفر به دنیا می آمد و با خودم می باید یک کارت تبریک برایش بفرستم اما هفته ها می گذشت و فقط زمانی یادم می آمد کارت تبریک مربوطه را از فروشگاه بخرم که دیگر دیر شده بود. اجرای این عادت ساده نبود. راه های زیادی برای آماده سازی محیط وجود دارند تا بتوان بلا فاصله از آن بهره گرفت. اگر میخواهید یک صبحانی سالم بپزید، از شب قبل کتری را روی اجاق بگذارید، روغن را روی اوپن قرار دهید و کاسه و بشقاب لازم هم دم دستتان باشد. وقتی بیدار شدید آماده کردن صبحانه آسان خواهد بود. دوست دارید بیشتر نقاشی بکشید، مداد، قلم، دفترچه و ابزارهای نقاشی را در بالای میزتان بگذارید که خیلی راحت به آنها دسترسی داشته باشید. دوست دارید ورزش کنید؟ لباس ورزشی، کفش، ساک باشگاه و بطری آب را از پیش آماده کنید. دوست دارید رژیمتان را بهبود دهید؟ آخر هفته ها مقدار زیادی میوه و سبزی خورد کنید و آنها را داخل ظروف دربسته بگذارید تا بتوانید در طول هفته دسترسی آسانی به خوراکی های سالم و آماده برای خوردن داشته باشید. راه های وجود دارند که می توانید خوب را با کمترین مقاومت و استکاک ممکن پیش ببرید. همچنین می این اصل را مکوس کنید و محیط را به گونه آماده کنید که اجرای آدت بد دشوار شود. مثلا اگر متوجه شده اید که زیادی تلویزیون نگاه می کنید، پس از هر بار تماشا آن را از پریز برق بکشید. فقط زمانی تلویزیون را دوباره به برق بزنید که نام برنامه مد نظرتان را با صدای بلند اعلام کنید. این کار باعث می شود استکاک لازم پیش رویتان ایجاد شود تا بیخود و بی هدف سراغ تماشای تلویزیون نروید. اگر این کار برایتان جواب نداد می توانید آن را یک پله بالاتر ببرید. تلویزیون را از برق بکشید و باتری کنترل را نیز پس از هر بار استفاده بیرون بیاورید. بدین ترتیب برای گذاشتن باتری نیز به ده ثانیه زمان بیشتر نیاز دارید. اگر هم خیلی جان سخت هستید پس از هر بار استفاده تلویزیون را از اتاق نشیمن خود بیرون ببرید و داخل کموت بگذارید. در این صورت، مطمئن می‌شوید که فقط در صورت نیاز به تماشای یک برنامه، آن را از کمد بیرون می‌آورید. هر قدر ایجاد شده بزرگتر باشد، احتمال انجام آن عادت کمتر خواهد شد. هر زمان امکان داشته باشد، تا ساعت نهار گوشیم را در یک اتاق دیگر می‌گذارم. وقتی گوشی نزدیکم باشد، کل صبح را بدون هیچ دلیل خاصی صرف چک کردن آن می کنم، اما وقتی در اتاق دیگری باشد، به ندرت فکر استفاده از آن به سرم می زند و استکاک ایجاد شده هم به اندازه کافی بالاست که بی خود سراغ گوشی نروم. در نتیجه هر روز صبح سه تا چهار ساعت زمان دارم که بدون حواظ پرتی به کارهایم برسم. اگر گذاشتن گوشی در اتاق دیگر برایتان جواب نمیدهد، به یک دوست یا عضو خانواده بگویید به مدت چند ساعت آن را پنهان کند از همکارتان بخواهید صبحها گوشی را داخل میزش بگذارد و هم موقع نهار آن را پس بدهد همین استکاک کوچک و اندک نقش باور نکردنی را در جلوگیری از رفتارهای ناخواسته ایفا می‌کند وقتی آب جو را پشت یخچال پنهان می کنم و دیگر در معرض دیدم نیست، کمتر می نوشم. وقتی اپ های شبکه های اجتماعی را از روی گوشی هم می کنم، هفته ها طول می کشد تا دوباره آنها را دانلود کنم و واردشان بشوم. این ترفندها ها احتمالا نتوانند یک اعتیاد واقعی و جدی را از بین ببرند، اما برای بسیاری از ما همین یک ذره استکاک هم می تواند تفاوت میان چسبیدن به یک عادت خوب یا لغزیدن به یک عادت بد را رقم بزند. حال فرض کنید دو جین از این تغییرات ایجاد شود و محیطتان به گونه ای تر شود که اجرای رفتارهای خوب ساده تر و انجام رفتارهای بد دشوارتر شوند. تأثیر فراوانی را مشاهده خواهید کرد. چه به عنوان یک فرد و چه در قالب والد، مربی یا رهبر سراغ این روی کردهای تغییر رفتار برویم، باید یک سؤال یکسان را از خودمان بپرسیم. چگونه میتوانیم دنیایی را طراحی کنیم که انجام کارهای صحیح در آن ساده تر باشد؟ زندگی خود را به گونه ای طراحی کنید که مهمترین اقدامات شما به ساده ترین شکل ممکن انجام شوند. خلاصه فصل رفتار انسان از قانون کمترین تلاش پیروی می کند. طبیعتاً به سمت گزینههایی تمایل پیدا می کنیم که به کمترین میزان تلاش نیاز دارند. محیطی بسازید که اجرای کار صحیح در آن به سادهترین شکل ممکن انجام بگیرد. استکاک مربوط به رفتارهای خوب را کاهش دهید. وقتی استکاک پایین باشد عادتها ساده می شوند. مربوط به رفتارهای بد را افزایش دهید. وقتی استک بالا باشد عادتها دشوار می شوند. محیط خود را آماده کنید تا اقدامات آتی ساده‌تر شوند.